داستان هفتم، دهانم زیبا و چشمانم سبز. صدای زنگ تلفن که بلند شد، مرد موخاکستری با لحنی خودمانی به زن جوان گفت که اگر صلاح می خودش جواب تلفن را بدهد زن جوان گویی صدای او را از دور شنید، رویش را به او کرد یک چشمش که طرف چراغ بود، کاملا بسته بود و چشم بازش هرچند سمیمیتی تویش خوانده نمی شد، درشت آنقدر آبی بود که بنفش میزد. مرد موخاکستری از او خواست که عجله کند و زن روی ساعد راستش با حالتی نیمخیز شد که حرکتش خیلی سرسری به نظر نرسد. با دست چپ موهایش را رو از روی پیشانی عقب زد و گفت: خدایا نمیدونم می‌گی چیکار کنم؟ مرد موخاکستری گفت که به جهنم، هر طور شد که شد. و دست چپش را از زیر دست زن جوان که از بالای آرنج ستون تند کرده بود، لغزاند و کم کم را بالا برد و لای بغل گرم اوجا داد. دست راستش را به طرف تلفن دراز کرد برای اینکه یک راست به گوشی برسد، مجبور شد خودش را اندکی بالا بکشد و از این رو پشت سرش به گوشه حباب چراغ کشیده شد. در آن لحظه نور چراغ با درخشش نسبتاً زیاد روی موهای خاکستری مرد که جا به جا سفید شده بود برق انداخت. موهای مرد هرچند در آن لحظه نامرتب بود، اما پیدا بود که تازه اصلاح شده یا تازه شدهاند. موهایش در پشت سر و شقیقه ها به رسم روز کوتاه بود، اما دو طرف و روی سرش بیش از حد بلند بود و در حقیقت بیش و کم متشخص معاب به نظر میرسید. با صدای رساتوی گوشی گفت: الو زن جوان تکیه داده روی ستون ثابت دراز کشیده بود و مرد را نگاه می کرد. چشمهایش که در آنها نه هوشیاری خوانده می نه تفکر تنها رنگ و اندازه شان را به رخ بیننده می کشیدند. صدای مردانه بیحال اما با لحنی گستاخانه و یا بهتر گفته شود وقیانه از آن سوی سیم به گوش رسید لی بیدارت کردم مرد موخاکستری به زن جوان در طرف چپش سرسری نگاهی انداخت و پرسید. کی هستی؟ آرتور تویی؟ آره، بیدارت کردم؟ نه نه، درست کشیدم مطالعه میکنم. اتفاقی افتاده؟ جدا بیدارت نکردم، تو رو به خود راست میگی مرد مرد موخاکستری گفت. نه نه اصلا، راستشو بخوای من شبی چهار ساعت بیشتر، علت تو تلفن تلفن کردم لی اینه که بپرسم تصادفا ندیدی جونی چه وقت از خانه بیرون بره؟ تصادفا ندیدی با الین باگن ها جایی بره؟ مرد مخاکستری دوباره نگاهی به طرف چپ کرد اما این بار به جایی در بالا و پشت سر زن که حالا داشت مثل پلیس های جوان چشم آبی و سمج ایلندی او را تماشا می کرد گفت نه ندیدم آرتور چشمایشو به انتهای دور و تاریک اتاق که سقف و دیوار به هم میرسید دوخته بود مگه همراهی تو نیومد نه خدایا نه پس اصلا ندیدی جایی بره مرد موخاکستری گفت میگم که نه راستشو بخوای ندیدم آرتور راستش باور کن از سر شب تا حالا کسی رو ندیدم پامو که گذاشتم تو این مردک فرانسوی و اتریشی نمیدونم کجایی منو گرفت به حرف هر کدوم از این خارجیای بیچشم و رو تا چشمشون به آدم میافته میخوان مجانی مسئله غذایی رو براشون حل کنی ببینا چی شده؟ جانی گم شده؟ وای خدایا خدا میدونه خبر ندارم میدونی که وقتی زیاده روی میکنه دیگه کسی جلو دارش نیست نمیدونم گفتم شاید پا شده مرد مخاکستری پرسید؟ به علم باگن ها تلفن کردی؟ آره هنوز نرفتن خونه نمیدونم خدایا تو اطمینون ندارم همراه اونا رفته باشه اما یه چیزیو میدونم خبر مرگم یه چیزی رو میدونم، این بار خدامو میکشم، جدی میگم، این بار دیگه خدامو میکشم، جونم به لب رسیده، پنج سال آزگاره، خدایا، مرد موخاکستری گفت، خیلی خوب، سعیکن به اصابت مسلط باشی تور اولا تا اونجا که من علم رو شناختم، میگم احتمالا همه پریدن توی یه تاکسی و یکی دو ساعت رفتن ویلج الان هر ستهایشون ممکنه سرت خراب، حس کنم رفته توی آشپزخونه با یه حروم زده روی هم ریخته حس میکنم آخه هر وقت زیاده روی میکنه توی آشپزخونه با هر کس و نکس شروع میکنه چونم به لب رسیده به خدا قسم این بار دیگه جدی میکم پنج سال مرد خاکستری پرسید حالا کجا هستی آرتور؟ خونه ای؟ آره خونم اونم چه خونه ای؟ خدایا خب فقط سعی کن یک کم به اعصابت ببینم روی پاد بند نیستی ها؟ نمیدونم خبر مرگم نمیدونم. مرد مو خاکستری گفت: خیلی خوف، حالا گوش کن. استراحت کن. فقط استراحت کن. تو که این ها رو میشناسی خبر مرگشون. اتفاقی که احتمالا افتاده اینه که به قطار آخری نرسیدن. هر لحظه ممکنه ستایشون سرت خراب شن. اون وقت شروع کنن از نایت کلاب تعریف کردن. با ماشین رفتن. از کجا میدونی؟ پراستار بچهشون میگفت کلی با هم گپ زدیم با هم خیلی صمیمی هستیم. آخه یه جون در دو غالبیم مرد موخاکستری گفت: « خیلی خوب خیلی خوب این حرفا رو ور کن بگیر بشین و استراحت کن هر لحظه ممکنه ستایشون سرزده وارد بشن به حرف من گوش بده تا که لیونا رو می نمیدونم چرا هر وقت سری به تیکت میزنن و برمیگردن یا یورک خوشمزدگیشون گل میکنه خودت که میدونی آره میدونم میدونم نه چیزی نمیدونم چرا میدونی فکرتو تو به کار بنداز هر دو تایشون ممکنه جونی رو به زور برده باشن گوش کن تا کسی نتونست جونی رو به زور چایی ببره این مزخرفاتو سر هم نکن مرد موخاکسری به آرامی گفت کسی نخواست مزخرف تر هم کنه میدونم میدونم عصب میخوام خدایا دارم مغزم از دست میدم تو رو خدا راست میگی بیدارت نکردم مرد موخاکستری گفت اگه بیدارم کرده بودی میگفتم آرتور سپس دستش را با بیخیالی از لای بغل زن جوان بیرون کشید و گفت نگاه کن آرتور میخوای نصیحتی بهت بکنم سیم تلفن را از زیر گوشی گرفت و گفت جدی میگم میخوای نصیحتی بهت بکنم آره نمیدونم خدایا نمیذارم بخوابی یکی نیست به من بگه برو خودتو سر به نیست کن. مرد موخاکستری گفت یه دقیقه به حرف من گوش بده. اولا اینو جدی میگم. برو توی رخت خوابا استراحت کن. برای خودت یه خواباور حسابی درست کن و برو زیر خواباور شوخی میکنی. خدایا من توی این دو ساعت ته یه بطری رو بالا آوردم. اون وقت تو از خواباور حرف میزنی. من نمیتونم روپام. مرد موخاکستری گفت خیلی خوب، خیلی خوب. پس بارو توی رخت خواب و استراحت کن چی میگم بیشی لپیله میگم خیال میکنی گرفتن نشستن و خودخوری کردن فایده داشته باشه آره درست میگی به خدا قسم ناراحت نیستم اما آخه بهش اعتماد ندارم به خدا قسم میخورم به خدا قسم میخورم بهش اعتماد ندارم انقدر بهش اعتماد ندارم که نمیدونم چی بگم وای این حرفش چه فایده ای داره دارم پاک عقل واموندم و از دست میدم مرد مخاکستری گفت خیلی خوب حالا دیگه حرفشو نزن میشه به خاطر من هم شده همه این چیزها رو از کلت بیرون بریزی تا اونجا که من میدونم تو داری اینو جدی میگم از یک کاهکو میدونی من چیکار میکنم؟ میدونی من چیکار میکنم؟ خجالت میکشم بهت بگم میخوای بدونی هر شب خبر مرگم چیکار میکنم وقتی میرسم خونه؟ میخوای بهت بگم؟ آرتور گوش کن این حرفا کسانی حساب کن به جهنم بهت میگم باور کن میترسم در یکی از کوموتای لجند در مال آپارتمانو باز کنم به خدا قسم میخورم هر شب که پا به خونه میذارم انتظار دارم تو سوراخ های خونه با یه مش بی سر و پا رو برو بشم با مسئول آسانسور با پادو با پلیس مرد موخاکستری گفت خیلی خوب، خیلی خوب سرکوان کم به حسابت مسلط باشی آرتور ناگه ها به طرف راستش نگاهی انداخت در آنجا سیگاری که مدتی پیش روشن شده بود به حالت تعادل روی زیر سیگاری دیده میشد. سیگار ظاهرا خاموش شده بود و به آن دست نزد توی گوشی گفت اولا هزار بار بهت گفتم آرتور دقیقا همین جاست که اشتباه میکنی. می کنی می بهت بگم چیکار می تو عزم تو جذب کردی اینو جدی میگم تو عزم تو جذب کردی خودتو شکنجه راستش راستشو بخوای تو خودت جونی رو وادار میکنی. حرفش رو خورد تازه بختت بلند بوده که زن بی‌نظیری حساب در اومده جدی میگم تو اصلا ذره‌ای برای سلیقش ارزش قائل نیستی یا برای فکرش به خدا قسم برای همینه که فکر شوخی میکنی. این زن چیزی که نداره یه جو فکره این زن حیوونه مرد موخاکستری که پرهای بینیش گشاد میشد ظاهرا نفس عمیقی کشید و گفت ما همه راستش راستشو بخوای ما همه حیونیم ابدنی اینطور نیست من یکی حیوون نیستم ممکنه احمق باشم بی پدر و مادر و راست در این آدم روزگار باشم اما حیوون نیستم این حرف حرفو به من نزن من حیوون نیستم نگاه کن آرتور این جهر و بحثا ما رو به جای فکر، خدای آکاش میدونست این حرف چقدر خنده داره خودش البته خیال میکنه یه پا روشن فکره. اینجاش دیگه خیلی خنده داره اینجاش دیگه خیلی اسباب تفریحه خانوم نقد تئاتر میخونه هم پای تلویزیون میشینه که چشماش دیگه جایی رو نمیبینه بله دیگه، خانوم روشن فکره میدونی من با کی عروسی کردم؟ دلت میخواد بدونی من با کی عروسی کردم؟ من با بزرگترین هنر کشف نشده و مجال رشد پیدا نکرده رمان نویس و نمیدونم نابغ ای که لنگشت تو نیویورک پیدا نشده عروسی کردم نمیدونستی آن خدایا انقدر مزحه که آدم از خنده روده بر میشه فکرشو بکن مادام بواری توی مدرسه شبانه کلمبیا مادام مرد موخاکسری با آقا تلخی گفت کی مادام بواری درس نقد تلویزیون بخونه خدایا کاش میدونستی چطور مرد موخاکستری گفت خیلی خوب خیلی خوب خودت میدونی که این حرف ما رو به جایی نمیرسونه سرش را برگردان و دو انگشتش را نزدیک لبهایش برد و با اشاره به زن گفت که سیگار میخواهد سپس توی گوشی گفت اولا تو با اینکه خیلی باهوشی آدمی هستی دست و پا چلفتی که لنگت پیدا نمیشه تنش بالا کشید تا زن جوان دستش به سیگارهای پشت او برسد جدی میگم از زندگی خصوصید میشه اینو خوند حتی از فکر خدای آدم دیوونه میشه خدایا هیچ شنیدی چطور از مردها تعریف میکنه هر مردی میخواد باشه دلم میخوایی وقتی بیکاری ازش بخوای نظرشو درباره یه مرد برات بگه چشمش به هر مردی بیفته میگه فوقالعاده جذابه حالا این مرد پیر و پاتال و مافنگی و سرتاپا کسافت هم باشه باشه مرد موخاکستری با خشونت گفت خیلی خوبارتور بسته دیگه این حرفا ما را به جایی نمی میگم ما را به جایی نمی رسونه. سیگار روشنی از زن جوان گرفت زن دو سیگار روشن کرده بود مرد موخاکستری دود سیگار را که از بینیش بیرون می داد گفت از این گذشته امروز کارت به کجا کشید؟ چی؟ مرد موخاکستری دوباره گفت میگم امروز کارت به کجا کشید؟ جریان دعوا به کجا رسید؟ خدایا نمیدونم، افتضاح. دو دقیقه مونده به اینکه خلاصه پرونده رو شروع کنم. وکیل شاکی، لیسبرگو میگم این کلفت دیوونه رو که یه دست ملافه به عنوان شاهد زیر بغلش بود آورد توی دادگاه. ملافه ها پر از لک و پک ساس بود. خدایا. مرد میخواکستری پوک دیگری به سیگار زد و پرسید، خب، چی شد؟ بازنده شدی؟ میدونی کی قاضی دادگاه بود ماتل ویتوریو نمیدونم چه پدركشتگیی با این بابا داشتم تا میومدم دهن و باز کنم میپرید به من یه همچین آدمی منطق سرش نمیشه باور کن مرد موخاکستری سرش را برگردان تا ببین از زن جوان سرگرم کاری است زن زیر سیگاری را برداشته بود و داشت آن را میان دو نفرشان میگذاشت مرد موخاکستری توی گوشی گفت بالاخره بازنده شدی یا نه چی گفتم بازنده شدی؟ آره، همینو میخواستم برات تعریف کنم با اون علم که بپاشده بود من راه پس و پیش نداشتم فکر میکنی جونیور از کوره در بره؟ نه اگه خیارکایی من از اون ترسی دارم اما خب، تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی از کوره در بره؟ مردمون خاکستری با دست چپ خاکستر سیگارش رو روی لبه زیر سیگاری کشید و به آرامی گفت خیال نمیکنم این بابا از بابا بره آرتور. اما احتمال زیاد هم هست که خیلی هم از این چریان خوشش نیاد. تو که خبر داری سر قضیه این سه تا هتل درمال چند وقت دست ما بنده. گویا اینکه این شانلی پیره خودش موضوعو میدونم میدونم. جونیور دسته کم پنجاه بار برام تعریف کرده. مرگ خودش قشنگترین داستانیه که توی عمرم شنیدم. بله دیگه. تو این دعواهای کسافت بازنده شدم. اینو بگم که تقصیر من نبود. اولا این ویتوریای دیوونه از اول تا آخر محاکمه کلافه کرد. کرد بعدشم این کلفت خلوه از ملافه های ساسمالی رو یکی یکی نشون داد مرد خاکستری گفت آرتور کسی نمیگه تقصیر تو بوده از من پرسیدی جونیور از کوله در میری یا نه؟ منم یه جواب معقول میدونم اینو میدونم چه میدونم دارم دیوونه میشم شاید با هم کردم توی ارتش. اینو با در گذاشته بودم مرد مخاکستری دوباره سرش را به طرف زن جوان برگرداند شاید به این منظور که او در چهرهش گذشت و حتی صبر را بخواند اما زن جوان توجهی به این موضوع نداشت زیر سیگاری را با زانویش برگردانده بود و داشت به سرعت خاکسترها را با انگشتایش جمع می کرد. وقتی سرش را بالا کرد که مرد رویش را برگردانده بود او توی گوشی گفت نه در میون بودی بود اره. خیال دارم برم، هنوز که تصمیم نگرفتم، البته مشتاق رفتن نیستم، طبیعیه، یعنی تا بشه هم نمیرم، اما شاید مجبور بشم برم، درست نمیدونم، راستش یه راه فراره، اگه اون کلای سربازی کوچولوی خودمو رو به پس بدن و اون میز بزرگ و پهن و اون پشه بند بزرگ و قشنگم و اون خیلی هم بد نمیگذره، مرد موخاکستری گفت، کاش جا پیدا میکردی نینی کچول اما تو کجا اخر کجا با اینکه آدم باهوشی هستی یعنی با اینکه مثلا آدم باهوشی هستی مثل بچه ها حرف میزنی باور کن اینو از قلب میگم تو موضوع های جزئی رو طوری تو ذهنت گنده میکنی که از عهده حل هیچ باید ولش میکردم میدونی چی میگم تا سونه گذشته که مگو شروع شد باید قال غصیره رو میکندم میدونی چی میگم میدونی چرا این کارو نکردم دلت میخواد بدونی چرا این کارو نکردم آرتور به خاطر خدا این حرفا ما رو به جای نمیرسونه یه دقیقه صبر کن بذار علتش برات بگم دلت میخواد بدونی چرا این کارو نکردم؟ پس علتش رو برات بگم علتش اینه که دلم به حالش میسوخت علت عمدش همینه که میگم دلم به حالش میسوخت مرد موخاکستری گفت خب چه میدونم؟ یعنی میگم این دیگه به من دخلی نداره اما اگر نظر منو بخوای چیزی که ظاهرم بهش توجه نداری اینه که جونی زن بالقیه به من مربوط نیست اما اگر نظر منو بخوای زن بالغ به سرت زده به خدا قسم بچه بالقیه گوش کن بگیر من دارم اصلاح میکنم توجه کن چی میگم من دارم اصلاح میکنم اون وقت خانوم از اون سر آپارتمان منو صدا میزنه میرم ببینم چطور شده درست وقتی دارم اصلاح میکنم و صورت کسافتم غرق کف صابونه بدونی از من چی میخواد میخواد از من بپرسه اون به نظر من آدم باهوشیه یا نه به خدا قسم میخورم فضعش رققت انگیزه همینه که میگم وقتی خواب بوده تماشاش کردم خوب میدونم چی دارم میگم باور کن مرد موخاکستری گفت خب این چیزا به خودت مربوطه یعنی میگم به من دخلی نداره آدم چی به تو بگه یه کاری که قضیه کمی ما برای هم ساخته نشدیم همینو رو بس لب مطلب همینه ما اصلا برای هم ساخته نشدیم میدونی کی به دردش میخوره یه النگ کم حرفی به دردش میخوره که هر چند وقت یه بار کوتک بهش بزنه بعد بره بشینه سر جاش روزنامه‌شو رو بخونه یه همچین شوهری به دردش میخوره من حریفش نیستم وقتی عروسی کردیم اینو فهمیدم به خدا قسم فهمیدم میخوام بگم تو آدم خیلی زرنگی هستی تن به ازدواج ندادی. از اون آدمایی هستی که گهگاه توی ذهنشون جرقه هایی میزنه. میبینن که بعد از زنگ گرفتن چه روزگاری پیدا میکنن. من چشممو بستم. جرقه ها رو نادیده گرفتم. جرقه ها رو تو سراسر عمرم نادیده گرفتم. من آدم بی ای هستم. علت همه بدبختیام هم همینه. مرد موخاکستری که سیگار تازه روشن شده ای از دست زن میگرفت گفت: تا آدم بیرزهای نیستی چیزی که هست فکر تو کار نمیندازی من خیلی هم بیورزم خیلی هم بیورزم خاک بر سرم. هر هرکسی خودش میدونه بیرز است یا نه اگه آدم بیعرزهای نبودم تو در نمیومدی بگی وضع زندگیم اینقدر وای این حرفا چه ای داره راستی که من آدم بیرزهای هستم خدایا تا این وقت نذاشتم بخوابی چرا به من نمیگی هر خاکی میخوای به سرت بریز و گوشیا بذاری؟ جدی میگم گوشی و بذار مرد موخاکستری گفت من خیال ندارم گوشی رو بذارم آرتور دلم میخواد به خاطر انسانیت هم شده کمکت کنم راستش تو خودت دشمن خودت آخه محل سگ به من نمیذاره به خدا یه ذره به من علاقه نداره راستشو بخوای خوب که فکرامو میکنم میبینم من هم دیگه دوستش ندارم خودم هم نمیدونم هم دوستش دارم هم دوستش ندارم بستگی به موقعش داره هر لحظه فرق میکنه هر بار اسممو چه اس میکنم که قال قضیه رو بکنم یه چیزی پیش میاد مثلا قرار شام با هم میذاریم یا یه جایی به دیدنش میرم و اون با اون دستکش های سفید خاک بر سرش یا یه چیز دیگه میاد نمیدونم چی دارم میگم یا به یاد بار اولی میافتم که با ماشین برای دیدن مسابقه دانشگاه پرینستون رفتیم نیوهیون. درست وقتی از بزرگراه بیرون رفتیم پنچر کردیم و سرما بی میکرد و اون چرا قوه رو گرفته بود تا من چرخ بیستابشو رو عوض کنم میدونی که چی میخوام بگم خودم هم نمیدونم یا به یاد چیزی میفتم خدایا چه حالی پیدا میکنم به یاد شعری میفتم که بعد از اولین باری که به گردش رفتیم براش فرستادم رنگیم سفید و گلگون است دهانم زیبا و چشمانم سبز است خدایا چه حالی پیدا میکنم این شعر همیشه مرا به یادش میانداخت درسته که چشماش سبز نیست و خبر مرگش شبیه وزقه. اما شیر منو به یاده نمیدونم. فایده این حرفا چیه؟ دارم اغلم از دست میدم. گوشیو بذار چرا نمیذاری؟ جدی میگم. مرد موخاکستری کستری را صاف کرد و گفت. من خیال ندارم گوشیو بذارم آرتور. فقط موضوع اینه که یه بار یه دست لباس برام خرید. با پول خودش. برا تعریف کردم. نه من... ش رو رفت فکر میکنم مغازه تریپلر و لباسو خرید حتی من هم باش نرفتم میخوام بگم یعنی خبر مرگش خوبی هایم داره خوشمزه این بود که اندازم بود فقط دادم پشتش کمی کوچیک کردن. شلوارش رو میگم و قدش میخوام بگم خبر مرگش خوبی هایم داره مرد موخاکستری لحظه دیگر گوش داد سپس رویش رو به زن جوان کرد نگاهی به او انداخت. و با همین نگاه کوتاه او فهماند که در آن سوی سیم چه پیش آمده است توی گوشی گفت ببینار تور گوش کن این کار نتیجه ای نداره این کار نتیجه ای نداره جدی میگم گوش کن چی میگم اینو از طی قلبم میگم لباساتو در بیارو مثل یه آدم سربره برو تو رخت خوابه، تو استراحت کن جونی احتمالا تا دو دقیقه دیگه اونجاست دلت که نمیخواد تو رو با این حال ببینه ها این الین باگن های ناکس هم ممکنه سر برسن دلت که نمیخواد تو رو با این حال ببینن ها گوش داد و گفت آرتور میشنبی چی میگم؟ خدای از سرشم تا حالا مزاحم خواب تو شدم هر کاری که میکنم مرد موخاکستری گفت تو مزاحم خواب من نشدی حتی فکرشم نکن بد که گفتم من تقریبا شبی چهار ساعت بیشتر نمیخوابم اما کاری که دلم میخواد بکنم اینه که به حکم وظیفه انسانی کمکی در حقت بکنم آدم گوش داد و گفت آرتور گوشی دستته؟ آره دستمه گوش کن از سر شب تا حالا نذاشتم بخوابی میشه بیام خونه‌ات اشکاری داره مرد موخاکستری کمرش را راست کرد و کف دست آزادش رو روی سر گذاشت و گفت الان جدی میگی آره البته اگه برات اشکاری نداشته باشه فقط یه دقیقه میمونم دلم میخواد یه چای بشینم و نمیدونم چی دارم میگم اشکاری داره مرد موخاکستری دستش را از روی سرش برداشت و گفت نه اما آخه این کار برای تو درست نیست یعنی من میگم میخوای بیای قدمت روی چشم اما راستشو بخوای من فکر میکنم باید همونجا بمونی استراحت کنی تا جونی از راه برسه صادقانه میگم خودت هم دلت میخواد وقتی پاشا میذاره تو خونه اونجا باشی درست میگم یا نه آره نمیدونم به خدا قسم نمیدونم مرد مخاکستری گفت من میدونم حتم دارم نگاه کن چطور الان بری تو رختخواب استراحت کنی یا بعد اگه دوست داشتی به من تلفن کنی یعنی میگم اگه دلت خواست حرف بزنی و قصه هم نخوری این بهترین کاره. بیشترمی چی میگم؟ حالا این کارو میکنی؟ باش. مرد موخاکستری لحظه گوشی رو نزدیک گوشش نگه داشت. سپس پایین آورد و سر جایش گذاشت. زن بیدرنگ از او پرسید: چی گفت؟ مرد سیگارش را رو از روی زیر سیگاری برداشت. یعنی آن را از میان توده سیگارهای کشیده و نیمه کشیده جدا کرد. پاکی به آن زد و گفت: میخواست بیاد اینجا زن جوان گفت خدایا تو چی گفتی؟ مرد مخاکستری گفت خودت که شنیدی و نگاهش کرد و گفت میخواستی بشنوی سیگارش را توی زیر سیگاری خاموش کرد زن جوان نگاهش کرد و گفت سنگ تموم گذاشتی راستی که محشر کردی خدای از خودم بدن میاد مرد موخاکستری گفت تو بد مخمسه گیر کردیم کجاش محشر بود بابا؟ زن جوان گفت چرا سنگه تموم گذاشتی؟ حالا بده نگام کن مرد مخاکستری نگاهی به او کرد و گفت خب راستش موقعیت بغرنجیه یعنی میخوام بگم به اندازی بلبشو شده که حتی زن به سرعت گفت عزیزم آز میخوام سرش را پایین آورد و گفت انگار یه جایید میسوزه. و کف دستش رو به تندی پشت دست مرد کشید و گفت نه فقط خاکستره پشت داد و گفت ولی محشر کردی خدایا چقدر از خودم پدم میاد بله موقعیت خیلی خیلی بغرنجیه این بابا داره پاک هست دست زنگ تلفن ناگهان به صدا درآمد مرد مو خاکستری گفت وای اما پیش از آنکه زنگ دیگری بزند گوشی را برداشت و تویش گفت الو لی خواب بودی نه نه گوش کن فکر کردم نباشه نباشه تو هم بدونی که جونی الان از راه رسید مرد موخاکستری گفت چی و با اینکه چراغ پشت سرش بود دست چپش رو سایبان چشما کرد آره الان از راه رسید ده ثانیه بعد از اینکه گوشی رو گذاشتم فکر کردم تا تو دست یه تلفنی بهت بکنم گوش کن خیلی اسات ممنونم لی جدی میگم میدونی چی میگم که نخابیده بودی که ها مرد مخاکستری همچنان که انگوشتهایش را سایبان چشما کرده بود گفت نه نه تازه داشتم نه نه و صدایش را صاف کرد آره اتفاقی که افتاده بود این بود که لیونا ظاهراً چیزی زده و بعدش گریه را انداخته و باب از جانی خواسته با هم برن بیرون و یه جا گلوی تر کنن تا قال بخوابه نمیدونم گوش میدی؟ قضیه پیچیده است. به هر حال برگشت غریبیه. به خدا قسم فکر می کنم اگه کارها رو به یه جای کوچیکی توی کانتیکت بگیریم و بریم زندگی کنیم. البته نه جاهای دور. اما یه جایش که بشه زندگی آرومی رو به راه کرد. آخه از گل و گیاه و اینجور چیزا خوشش میاد. و اگه خونه ی چیزی داشته باشه که انگار دیگه خدا دنیا رو بهش داده. میدونی که چی میگم؟ میخوام بگم مگه ما غیر از تو و یه مشت آدم مافنگی آشنای دیگه ای داریم. این خراب شده فریاد آدمو به آسمون میرسونه. میدونی چی میخوام بگم؟ مرد موخاکستری جوابی نداد. چشم زیر سایبان دستش بسته شد. به حال امشب خیال دارم را به این موضوع حرف بزنم. یا شاید فردا آخه هنوز حالش سرجا نیومده یعنی می بگم اصولا آدم خوبیه و حالا که فرصتی پا داده که با هم کنار بیاییم احمقانه است که دست روی دست بذاریم این کار که داره رو به راه میشه خیال دارم قضیه ملا های شده رو هم شدهرم ریس کنم. فکرمو کردم فقط اینا میخواستم ازت بپرسم لی فکر میکنی اگه خودم بلنشم برم با جونیور حرف بزنم بتونم آرتور اگه بدت نیاد خیال میکنم بهتره میخوام بگم یه بار فکر نکنی برای این دوباره به تلفن کردم که نگران شغلم هستم یا نگران چیز ای ابدا به خدا قسم باور کن فکرشام نمیکنم. فقط پیش خودم گفتم اگه بشه بی درد سر قضیه رو با خود جونیور حل کنم مگه بیکارم بیام مرد موخاکستری دستش را از روی صورتش پایین آورد میان حرفش دوید و گفت آرطور گوشگاه من یه بار سر سردرد شدیدی گرفتم علتشم نمیدونم ناراحت نمیشی گفتگو رو درس بگیریم فردا صبات حرف میزنم باشه لحظه دیگر گوش داد و سپس گوشی را گذاشت زن جوان بار دیگر بیدرنگ سر حرف را باز کرد اما مرد جوابش را نداد سیگار روشنی از توی زیرسیگاری برداشت سیگار زن جوان را و به لبهایش نزدیک کرد اما ناگهان از دستش افتاد زن جوان دستش را پیش آورد تا پیش از آنکه چیزی بسوزد سیگار را بردارد اما مرد موخاکساری به او گفت به خاطر خدا آروم بگیر و زن دستش را پس کشید